بهار جلد چهل و شش صفحه دویست و چهل و سه بهار الانوار جلد چهل و شش صفحه دویست و چهل و سه ان عبی بسیر قاله عبی بسیر می دونید نابینا بود از اصحاب لایق امام باغر و امام صادق علیه السلام میگه دخلت المسجد مع ابي جعفر عليه السلام عبی جعفر ابو جعفر امام باقر عليه السلام من همراه امام باقر عليه السلام داخل مسجد شدیم و الناس یدخلون و یخرجون جمعیت می اومد و میرف، یا ادبار وارد مسجد میشودن یا ادم از مسجد خارج میشودن فقال لی امام باقر عليه السلام به من ابا فرمودن سل ناس حل یروننی از مردم سوال کن آیا منو میبینن خوب دقت کن چی میخوام عرض کنم امام باقر علیه السلام تو مسجد ابابسیرم همراش مردمم میان تو مسجد و میرن امام باقر علیه السلام به ابوابسیر میفرماید از مردمی که میانو میرن سوال کن منو میبینن فکل من لَقِیتُوهُ قُلْتُو لَهُ له. بسیر میگه هر کسی را که من توی مسجد ملاقات میکردم یعنی متوجه میشدم داره میاد و میره چون خودش که نابینا بود ولی اینا میان میرن سرسده ها رو میفهمم یکی میاد سلام میکنه یکی مثلا از من میپرسه حال چطور یکی با اون یکی میفهمیدم مردم میان میرن فَكُلَّ مَنْ لَقِیتُوهُ قُلْتُو له. هر کسی رو که من متوجه شدم الان وارد مسجد شده یا اینجاست بهش میگفتم ارا ایت ابا جعفر علیه السلام علیه السلام آیا امام باقر رو دیدید؟ و اینجوری... چون امام به من فرموده بود که اینجوری سوال کنید یقول الله میگفتن نه دقت کنید چیه یقول الله و هو واقفن حالا امام اونجا ایستاده بود و هو واقفن امام علیه السلام اونجا استادن و آباء بسیر یه درسی بدن یه چیزی رو بفهمونن خیلی آقایون ظریفه دقت کنید بعدش رو امام به آباء بسیر میفرماد از مردم سوال کنید منو میبینن آباء بسیرم میگه هر کسی که من متوجه میشدم الان تو مسجد میاد میره میگفتم ارعیت عباد جعفرن علیه السلام آیا شما امام باغر علیه السلام رو دیدید یا قول لا گفتن نه نه میگفتن نه. و باغه واقفان حتی دخل ابو هارون المكفوف ابو هارون از اصحاب امام باقره که او هم نابینا بود. ابو هارون مکفوف نابینا بود نه بسیر حالا اینو دقت کنید. حتی دخل ابو هارون المكفوف ابو هارون مکفوف وارد شد. چون هارون ممنوع صرف اضافه میشه نصب میگیره. ابو هارون المكفوف قالا اینجا امام علیه السلام یه اشاره کرد به عبا بسیر از عزیز سآل کن فقل تو حل رأیت عبا جعفرن علیه السلام عبا بسیر به ابو هارون مخفوف که نابینا نابود گفت آیا امام باقر علیه السلام رو دیدی؟ متوجه شدی مثلا حضرت کجا هستند؟ فقاله علیسه و به اگه نمیبینید اینجا ایستاده. الیسا هو به قائمن مگه نیست که اینجا ایستاده. حالا رو ببینیم. قال و ما علمک. ابا بصیر به ابو هارون مکفوفو از کجا فهمیدی؟ و قال فکیف لا اعلم و هو نور ساتون. من نفهمم این نوره درخشاندی ای داره. نورش همه جا رو گرفته. اول میخوام یه درد دل کنم چرا اینجور روایات طرح نمیشه این که من مدرک خوندم جلد 46 بهار صفحه 243 چرا این روایت طرح نمیشه این یک دو چرا افرادی که بینا بودند امام باقر علیه السلام را نمیدیدند ولی فردی که عل الظاهر نابیناست او امام را میبینه و چرا امام باقر علیه السلام یه همچون موضوعی رو ترک کردن مثلا چرا امام باقر علیه السلام و ابا بصیر نفرمودن بیا تو مسجد به مردم بگو شکیات نمازشون از من بپرسن اشتباه نکنید اینا رو باید بلد باشیم ما این من نفی اون نمی‌کنم ما شکیات نمازم باید بلد باشیم واجبات رو بدونیم محرمات رو بدونیم ولی می‌خوام بگم چه راضی که امامان علیهم السلام یه همچون مطالبی رو برای بعضی ها مطرح می کردن. یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید دین فقط همین احکام ظاهریه ی اولیه است اینا بخشی از دینه حقیقت دین چشم دلباز شدنه حقیقت دین یافت حقایق عالم معناست حقیقت دین واقعیت‌های برتر عالم رو مشاهده کردن یک نابینا نورانیت امام رو به گونه‌ای متوجه می‌شود که امام یعنی مظهر حقیقت عالم وجود مظهر حقیقت عالم وجود رو او به گونه در درمی‌یابد بقیه‌ای که تو مسجد وارد میشن و خارج میشن قدرت دیدن ندارن هم میخواد بگه آقا جون به این مسائل ظاهری دلتونو خوش نکنید بیاید بالاتر یعنی هدفتونو بالاتر بگیرید مراقب باشید هدفتون چیه دست کم نگیرید خودتونو